مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و, و یکم فرستادن میکایل را علیه السلام به قبض هفنه خاک از زمین جهت ترکیب ترتیب جسم مبارک عبالبشر، خلیفت الحق، مسجود الملک و معلمهم آدم علیه السلام. <عصدق> <مصدق> گفت میکائیل را تو رو مشت خاک در رو با از وی چوشیر. چون که میکائیل شد تا خاکدان دست کردو تا که بر باید آن. خاک لرزید و درآمد در, در گریز گشت او لا باکنان و اشک ریز سینه‌سوزان لا کرد و اجتهاد با سرش که پر خون داد که به یزدان لطیف بیندید که بکردت حامل عرش مجید کیل ارزاق جهان را مشرفی تشنگان فضل را تو مغرفی زن که می از کیل اشتقاق دارد و کیال شد در ارتزاق که امانم ده مرا آزاد کن بین که خونالود می گویم سخن معدن رحم اله آمد ملک گفت چون ریزم بران ریش این نمک همچنان که معدن قهر است دیو که برآورد از بنی آدم غریو سبق رحمت بر غذب هست ای فتا لطف غالب بود در وصف خدا بندگان دارند لابد خوی او پر پرز آب جوی او آن رسول حق قلاووز سلوک گفت اناسو علا دین الملوک. رفت میکائیل سوی رب دین. خالی از مقصود دست و آستین. گفت ای دانای سر و شاه فرد. خاکم از زاری و گریه بسته کرد. آب دیده پیش تو با قدر بود. من نتانستم که آرام ناشنود آه زاری پیش تو بس قدر داشت من نتانستم حقوق آن گذاشت پیش تو بس قدر دارد چشم تر من چگونه گشتمی استیزگر دعوت زاری است روز پنج بار را که در نماز او بزار نعره معزن که حیا الفلاح وان فلاح این زاری است و اقتراح آنکه خواهی که از غمش خسته کنی راه زاری بر دلش بسته کنی تا فرود آید بلا به دافعه چون نباشد از تزرع شافعه وان که خواهی که از بلایش واخری جان او را در تزرع آوری گفته در اندرنوبی، کان امتان که بر آمدان قهر گران، چون تزرع می نکردند آن نفس تا بالازیشان بگشتی باز پس، لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، آن گناههاشان عبادت می نمود، تا نداند خیش را مجرم انید، آب از چشمش، کجا داند داوید؟ قصه قوم یونس علیه السلام بیان و برهان آن است که تزرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق تالا فائل مختار است پس تزرع و تعظیم پیش او مفید باشد قوم یونس را چو پیدا شد بلا ابر پر آتش جدا شد از سما برق می انداخت می سوزید سنگ ابر می غرید و رخ می ریخت رنگ جملگان بر بام ها بودند شب که پدید آمد ز بالا آن کرب. جملگان از بام ها زیر آمدند سر جانب صحرا شدند مادران بچگان برون انداختند تا همه نالا و نفیر افراختند از نماز شام تا وقت سحر خاک می کردند بر سر آن نفر. جملگی آوازها بگرفته شد، رحم آمد بر سر آن قوم لود. بعد نومیدی و آه ناشکفت، اندک اندک عبر واگشتن گرفت. قصه یونوس دراز است و عریض وقت خاک است و حدیث مستفیز چون تزرع را بر حق قدر هاست بها ها جاست زاری را کجاست هین امید اکنون میان را چوست بند خیز ای گرینده و دایم بخند که برابر مینهد شاه مجید عشق را در فضل با خون شهید. فرستادن اسرافیل را علیه السلام به خاک که هفنه برگیر از خاک بحر ترکیب جسم آدم علیه السلام گفت اسرافیل را یزدان ما که برو زان خاک پر کن کف بیا آمد اسرافیل هم سوی زمین باز آغازید خاکستان هنین کی سور و ای بحر حیات که ز تو جان یابد مواد دردمی از سور یک بانگ عظیم. پرشواد محشر خلایق از رمیم. دردمی در سور گوی از سلا. بر جهیدای کشتگان کربلا. ای حلاکت دیدگان از تیغ مرگ. برزنید از خاک سرچون شاخ و برگ. رحمت تو، واندم گیرای تو پر شود این عالم از احیای تو تو فرشته رحمتی رحمت نما حامل عرشی و قبله دادها عرش معدنگاه داد و معدلت چار جو در زیر او پر پرمغفرت جوی شیر و جوی شهد جابدان جوی خمر دجله آب روان پس ز در بهشتستان رود در جهان هم چیزکی ظاهر شود گرچه آلوده است اینجا آن چهار از چه از زهر فنا و ناگوار جرعه بر خاک تیره ریختند زان چهار و فتنه انگیختند تا بجویند اصل آن را این خسان خود بر این قانه شدند این ناکسان. شیر داد و پرورش اطفال را. چشمه کرده سینه هرزال را. خمر دفع غصه و اندیشه را. چشمه کرده از انب در اجترا. انگبین داروی تن رنجور را. چشمه کرده باطن زنبور را. آب دادی آم اصل و فر را، از برای تو را بهر کر را، تا از اینها پی بری سوی اصول، تو بر این قانع شدی ای بلفزول، بشنم اکنون ماجرای خاک را که چه میگوید فسون مهراک را، پیش اسرافیل گشته او عبوس می کند، صد گونه شکل و چاپلوز که به حق ذات پاک زلجلال که مدار این قهر را بر من حلال من از این تقلیب بویی میبرم برم بدگمانی می دود اندر سرم تو فرشته رحمتی رحمت نما زن که مرغی را نیازارد هما ای شفا و رحمت اصحاب درد تو همان کن کاندونیکو کار کرد زود اسرافیل باز آمد به شاه گفت عذر و ماجرا نزد اله کز برون فرمان بدادی که بگیر عکس آن الهام دادی در زمیر امر کردی در گرفتن سوی گوش نعی کردی از قساوت سوی هوش سبق رحمت گشت غالب بر غضب ای بده افعال و نیکوکار رب فرستادن ازرائیل ملک و والحزم را علیه السلام با برگرفتن حفنه خاک تا شود جسم آدم چالاک علیه السلام گفت یزدان زود ازرائیل را که ببین آن خاک پرتخیل را آن ضعیف زال ظالم را بیاب مشت خاک هین بیاور با شتاب رفت اسرائیل سرهنگ قضا سوی کری خاک بحر اقتضا خاک بر قانون نفیر آغاز کرد داد سوگندش بس سوگند خورد که غلام خاص وی هم مال عرش ای متاول امر اندر عرش و فرش رو به حق رحمت رحمان فرد، رو به حق آنکه با تو لطف کرد، حق شاه که جزو معبود نیست، پیش او زاری کس مردود نیست، گفت، نتوانم بدین افسون که من رو بتابم، زامر سر و علن گفت آخر امر فرمود او به هر دو امرند آن بگیر از راه علم گفت آن تعویل باشد یا قیاس در صریح امر کمجو التباس فکر خود را گر کنی تعویل به که کنی تعویل این نامشتبه دل همی سوزد مرا برلابت سینم پرخون شد از شورابت نیستم به رحم بل زن هر سپاک رحم بیش استم ز درد دردناک گر تپانچه می زنم من بر یتیم وردهد حلوا به دستش آن حلیم این تپانچه خوشتر از حلوای او شود غره به حلوا وای او بر نفیر تو جگر میسوزدم لیک حق لطف همه آموزدم لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بی بها. قهر حق بهتر زست حلم من است. معن کردن جان زهق جان کندن است. بدترین قهرش به از حلم دکان، نعم رب بل آلمین و آن لطف های در قهر او جان سپردن جان فضاید بهر او هین رها کن بدگمانی و زلال سر قدم کن چون که فرمودت تعال آن تعال او تا ها دهد مستی و جفت و نهالی ها دهد بار آن امر سنی را هیچ هیچ من نیارم کرد وحن و پیچ پیچ این همه بشنید آن خاک نژند، زنگمان بد بدش در گوش بند. باز از نوع دگر آن خاک پست، لابه و سجده همی کرد او چومست. گفت نه برخیز نبود زینزیان، من سر و جان مینه هم رهن زمان، لابه مندیشو مکن لابه دگر جز بدان شاه رحیم دادگر بنده فرمانم نیارم ترک کرد امر او کاز بهر انگیزید گرد جز از آن خلاق گوش و چشم و سر نشنوم از جان خود هم خیر و شر گوش من از غیر گفته او کر است او مرا از جان شیرین جانتر است جان از او آمد، نیامد آمد او ز جان صد هزاران جان دهد او رایگان جان که باشد کشگزینم برکریم کیک چه بود که بسوزم زو گلیم من ندانم خیر الا خیر او سمو بکمو امی من از غیر او گوش من کراست از زاری کنن که منم در کفه او همچون سنان بیان آنکه مخلوقی که را از او می رسد به حقیقت او همچون آلتی است آرف آن بود که به حق رجوع کند نه به آلت احمقانه از سنان رحمت مجو زانشه جو کان بود در دست او با سنان و تیغ لابت شون کنی کو اسیر آمد به دست آن سنی او به صنعت آذر است و من سنم آلت کو سازدم من آن شبم مرا ساغر کند ساغر شوم. ورمرا را خنجر کند خنجر شوم گر را چشمه کند آبی دهم ده ور مرا آتش کند تابی دهم ده گر را باران کند خرمنده هم. ورمرا ناوک کند در تن جهم جه گر مرا ماری کند زهرف کنم ورمرا یاری کند خدمت کنم من چو کلکم در میان اسبعین نیستم در صف تاعت بین بین خاک را مشغول کردو در سخن یک کفی بر بود از آن خاک کهن ساهرانه در ربود از خاکدان خاک, دان. خاک مشغول سخن چون بیخدان برد تا حق تربت بیرای را تا به مکتب آن گریزان پای را گفت یزدان که به علم روشنم که تو را جلاد این خلقان کنم گفت یارب دشمنم گیرند خلق چون فشارم خلق را در مرگ حلق، تو روا داری خداوند سنی که مرا مبغوظ و دشمن رو کنی؟ گفت، اسباب پدی دارم ایان از تب و قولنج و سرسام و سنان که بگردانم نظرشان راز تو در مرضها و سبب های ستو. گفت یا رب بندگان هستند نیز که سببها را بدرند ای عزیز چشمشان باشد گزاره از سبب درگذشته از حجب از فضل رب سرمای توحید از که حال حال یافته رسته از علت و اطلال ننگرندن در تب و قولنج و سل راه ندهند این سبب ها را به دل که هر یک زین مرضها را دواست چون دوا نبذیرد آن فعل قضاست هر مرز دارد دوا میدان یقین چون دوای رنج سرما پوستین چون خدا خواهد که مرد بفسرد سردی از صد پوستین هم بگذرد. در وجودش لرزه بنهد که آن نه به جامع به نز آشیان چون قضا آید طبیب ابله شود دوا در نف هم گمره شود. کی شود محجوب. ادراک بسیر، زین سبب حجاب هجاب گیر. اصل بیند دیده چون اکمل بود، فرع بیند چون که مرد احول بود. جواب آمدن که آنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید بر کار تو اسرائیل هم نیاید که تو هم سببی اگرچه مخفیتری از آن سبب ها و بود که بر آن رنجور مخفی نباشد که و هو اقرب و الیه منکم بلکن لا تبسرون گفت یزدان آن که باشد اصلدان پس تو را که و اندر میان گرچه خیش از پنهان کرده ای پیش روشندیدگان هم پرده ای وان ایشان را شکر باشد عجل چون نظرشان ماست باشد در دوال تلخ نبود پیش ایشان مرگتن، چون روند از چاه و زندان در چمن. وا رهیدند از جهان پیچ پیچ، کس نگیرید بر فواده هیچ، هیچ. برج زندان را شکست ارکانیه، هیچ از او رنجد دل زندانیه. که دریغ این سنگ مرمر را شکست، تا روان و جان ما از حبس رست. آن رخام خوب و آن سنگ شریف برج زندان را بهی بود و علیف. چون شکستش تا که زندانی برست، دست او در جرم این باید شکست؟ هیچ زندانی نگوید این فشار جز کسی حبس آرندش بدار تلخ کی باشد کسی را کش برند از میان زهر ماران سوی قند جان مجرد گشته از غوغای تن میپرد با پر دل بی پای تن همچو زندانی چه کندر شبان خسبد و بیند خواب او گلستان گوید ای یزدان مرا در تن مبر تا در این گلشن کنم من کر و فر گویدش یزدان دعا شد مستجاب وامرا و الله و عالم به سواب. این چونین خوابه ببین چون خوش بود مرگ نادیده به جنت در رود هیچ او حسرت خورد بر انتباه بر تنه با سلسله در قهر چاه مؤمنی آخر درا در صف رزم که تو را بر آسمان بوده است بزم. بر امید راه بالا کن قیام همچو شمع پیش مهراب ای غلام. عشق می بارو همی سوز از طلب همچو شمع سربوریده جمله شب. لب بند از تعام و از شراب، سوی آسمانی کن شتاب. دم بدم بر آسمان میدار امید، در هوای آسمان رقصان چوبید دم بدم از آسمان میآیدت آب و آتش رسق می افزایدت. گر تو را آنجا برد نبود عجب من گر عجز و بنگر در طلب که این طلب در تو گروگان خداست زنگ هر طالب به مطلوب سزاست جهد گن تا این طلب افزون شود تا دلت زینچاه بیرون شود خلق گوید مرد مسکین آن فلان تو بگوی زندام ای غافل گر تن من همچو تنها خفته است هشت جنت در دلم بهش گفته است جان چو خفته در گل و نسرین بود چه غم است ارتن در آن سرگینگ بود جان خفته چه خبر دارد زتن کو به گلشن خفت یا در گلخن می زند جان در جهان آبگون نعرهی یا لایت قومی یعلمون گر نخواهد زیست جان بی این بدن پس فلک ایوان کی خواهد بدن گر نخواهد بی بدن جان تو زیست فی السماع رزق و کم روزی کیست